بدو گفت ما را کشایسته تر چون این گفت کان کس که آخسته تر بپرسید زو گفت آخسته کیست که بر تیز مردم بباید گریست چون این داد پاسخ که از عیب جوی نگر تا که پیچد سر از گفتگوی نام خداوند جان و خرد کلی این برتر اندیشه برنگ سرد. سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره خایر و محتاب و شما عزیزانی که هر یک شنبه شب منتظر هستید تا آقای دکتر دکتر نواند بگم استاد فیدون جنیدی بیان برنامه رو شروع کنن ایشون در استودیو هستن و من سلام از میکنم خدمتشون دوباره و خیلی خوش درود بر شما شاب باشید درست بر شما و حالا یک مطلبی هست که من باید بهتون بگم من هفته پیش من چشم شور نیست میگن چش سدم من شما رو چش سدم هفته پیش فکر کنم آخ... <تصفيق> بگم چی بود بفهمید. آقای استاد جانهیری همیشه با یه پیراهن و یه کت من هفته پیش داری کنم اگه هفته پیش هم یادون به هفته هم اومده بود همه هم خیلی سر بود گفتم که اصداد سردتون نمیشه سرمون نخواهیدن گفتم نه من همیشه با همین یه دونه پیراهن و اینا بدن سلامت خدا رو شکر زندگی سلامت و اصلا نه من سیز نمی نمیشم خلاص من گفتم پیش خودم گفتم عجیب من مثلا دیگه ها با اینکه که سال من دارم فاصله سنی دارم فکر می کنم از اصداد دیگه من این همه لباس و این ها اصداد همیشه توی فکر, توی فکر بودم که رفتم خون خلاف برسون رسیم این ویروس بود و حمله ویروسی بود خیلی هم شدید بود خب بالاخره خوشبختانه با دارو و درمان ایرانی چون من دوستی عزیزی سروری دارم به نام آقای استاد نازم که پشت در پشت اینها پزشکان ایرانی بودن و با شیوی درمان ایرانی با دردخواه در حقیقت مبارزه میکنن ایشون هم لطفم بودن تشمیدن بال سر من و چند تا گیاه دادن و خیلی زودتر چون گویا این ویروس ها که حمله میکنن خیلی طول میکشهلی من یه هفته و خوب شدم ولی این که می که این آثار این ددار, رو ددار روی هنجره من هست هنجرم یک واژه فارسی با هی جی خود میبیم هنجر یعنی جایی که آوازها به همدیگه پیوسته میشه. این را هم میشککس تا به حال توجه نکرده من در پیشکوفتار شاهنامه فتوسی این نوشتم. هن، یعنی هم جر یعنی آواز جایی که آوازها هم پیوسته میشه اگر این اننجره با هیجی می بود و عربی می بود و هجار و محجر رو محنجور نه ازش ساخته می به هیچ وجه این واجه عربی نیست و واژه فارسی درست هنوز تاثیر اونا روی حنجره من با قیست اما من ما, یعنی ما, باید... م... ما باید کار بکنیم نباد که من خودم رو بيندوس، خیلی خوش اومدید، خوش باشی. من باور فرمید که حالا گفتم می‌خندم من بخاطر اینکه خودم کسی فکر نکنید استاد من چیز کمچش سالمم ترس از اون نمره هر رو دارم یه مقداری. <تصفيق> <تصفح> نه من اینجوز مسائل رو در نمره وارد میکنم همواره معلمی بودم با سرپرانت و با افتخار و احساسات شخصی خودم رو که همواره متمایل به دانش بوده و دانش آموزان بوده وارد نکردم نمره رو به چ خودش دادم این مطمئن باشید خدا خیلی خوشحالم این که سلامت هستی حالا بعد از این صحبت کردیم صحبت شروع بخاطر اینکه بگم خدمت عزیزان استاد الان حالشون خیلی خوب هست هفته پیش توی طول این هفته مریض بودن و امروزم که با هم صحبت کردیم میشون گفتند بماند و من خیلی ناراحت شدم از خداون میخوام هرچزیتر سلامتی کامل رو پیدا کنیم. همون حنجره ای که فرمودید دوباره ما صدای خوب، آوای خوب شما و صحبت های خوب شما رو بشنویم. شاد باشید، پیروز باشید. من دهن आवाज در کنم خدمت شما تلفن های برنامه رو. قبل از برنامه شروعش من خودی زودتر اومدم دیدم پیامک های شما هم اومده. چشم من پیامک های شما رو حتما خواهم خواند و از یک ساعت، دو ساعت قبل برنامه این پیامک میاد برای ما منتها برای تعدادی از شنوندگان عرز میکنم که ندانند شاید شماره پیامک ما و تلفنهای برنامه رو ر میکنم تلفنهای برنامه دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج دویست و بیست پانسد و هشتاد و هشت دو صفر دویست و بیست پانسد و هشتاد و هشت دو صفر و شماره پامک سی هزار ۵ و8 ۳ زار شما میتونین سوالات خودتون رو درباره راهاهنامه فرداسی درباره زبان بپرسید توالاتی دارید در مورد اسامی اگر هست میتونید بپرسید فرهنگ ای و فرهنگ ایران, ایران. جونه دی پاسو خواهند گفت پایگاه اطلارسانی ما www. .ir هست و شما عزیزانی که خود کشور دوستان اقوام آشنایان هستند میتونید بفرمایید که برنامه های ما رو از طریق محباره محباره محباره و فارسی زبانانی که میشناسید در اختانوات جهان بفرمایید که برنامه های ما رو برنامه شبک فرهنگ میتونن بشنبند روی ریماکواردی خاصبر اون بخشی که رادیو چون دو بخش داره ماخوارها های تصویر هست یک صدا تو اون بخشی که صدا هست رادیو فرهنگ رو نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنند و برنامه های رادیو فرهنگ به برنامه برنامه‌ای ما رو بشنوند در همین شروع من می‌خواستم در مورد شعر آغازی یک سوالی بکنم در این فرصت شعر آغازی که خوندید برای من خیلی شعر آغازی این بود که کسی که گوش می‌کنه که در باره او چی میگند و اگر عیبی از او میگیرند سر از گفتگوی نمیفیچه و بخواد ببینی که واقعا این ایبرو داره این شخص آهسته است این شخص تند و تیز نیست چون تا اگر کسی رو با دید انتقاد نگاه کنید بخواد برافروخته بشه و پاسخ بده و از خودش دفاع کنه یا از جایگاه خودش اتفاق کنه این شخص آهسته نیست انسان باید آهسته باشه خوش در فرنگ ایران آهستگی یکی از برترین جلوه های شخصیت انسانی بوده انسان توند انسانی که زود برافروخته میشه انسانی که خیلی زود پاسخ میده این شایسته نبوده در فرنگ ایران باید آهسته بود باید شرم داشت باید گوش کرد و بعد پاسخ داد و اگر سخنی که گفتن درست هست به جا هست بپذیره. اون ای به خودش رو بپذیره و در آینده سای کنه رو برطرف کنه این مفهوم این شعر بود بل. و صحبتی هم خواهیم داشت در مورد این استاد صحبت خواهند کرد در مورد جشنی که جشن بزرگی هم هست و در مورد اون هم صحبت خواهند کرد میخواید الان صحبت کنیم یا موسیقی بشنویم؟ الان نه صحبت کنید که بعد از اون ما باید. نبرد پهلوانان رو داریم. اگر می‌شه بله، بریم دنبال نبرد پهلوانان. نبرد پهلوانان روی صفحه دفتر سوم صفحه سی و دو دفتر سوم رویه یا صفحه 32 نبرد پهلوانان موضوع امشب هستش. داستان امشب هست. ادامه داستان نبردونه. در مورد داشت سرده می‌خوام بگم. بر آغاز این جشن مسیار شگیفت و فرمایه ای ایرانی رو به همه ایرانیان بود میگم و متاسفانه بر پایه یک داستان افسوده به شاهنامه در دوران همه گان در این بار اشتباه میکنم و گمان دارن که هوشنگ سنگی زد به مار و سنگ به مار نخورد و آتش روشن شد و بعد همون آتش رو جشن گرفتن و که جشن کردان شب و باده خورد صد ناموان جشن پرخونده کرد این داستان افسوده است خوشبختانه پیش از من خالق مطلق هم پی برده که افسوده است مطلق خالق مطلق از روی میزان های سنجه های نسخ شناسی اما من از روی میزان های سخن شناسی ثابت کردم که این داستان از آن فردوسی نیست و افسوده به شاهنامه است چند دلیل داره دلیل اول که یکی روز شاه جاسو کوه همیرفت با چندتا هم گروه پدیدام از از دور چیزی دراز این چیزی دراز یعنی چه یعنی بشر که در اون زمان با اینقدر با طبیعت زندگی میکرده تا حالا ما رو ندیده بوده که چیزی دراز بوده باشه سیاهرنگ و تیرهتن و تی تا سیاهرنگ خودش با تیرتان یک معنی داره گفتار فر نیست که این تکرار بشه و تی هیچگاه به, به صفت مار خزنده تاختن نگفتن در زبان فارسی که حالا این کار بشه در صورت که یه سنگ بر میداره حوشنگ که این رو بزنه و سنگ به مارده میخوره اما به یه سنگ رویه میخوره و آتش پدید میاد امروز فرزندان ایران که با برخ زندگی میکنن و اون چیزهای قدیمی رو ندیدن نمیتوننم تص کنم اما خب پدران پدر بزرگکن به خاطر دارن که ما می رفتیم از تو کوچه که همه کوچه ها سنگ داشت سنگ جمع می‌کردیم و با این سنگ بازی می‌کردیم. از تمام مهمتر که سنگ یه قلد بود که تو خونه ها بر یا خواه بله. رو با هم بازی یه بازی بود بله و من خوشبختانه این رو در یه فیلمی که می‌رفتم با استرالیا دیدم که بچه های در حیقت بومی دارن بازی میکنن این نشانه گولو گولو. همین یه گلده گلده همونطور عروس گرفته بود از پشت میداخت و میزد و این نشانه حرکت فرهنگ ایران از ایران به طرف شرقاسی آسیاست که موضوع اون در کتاب داستان ایران دفتر دوم خواهد اومد اینو سنگای خوچید سنگای بزرگتر رو که چیز بود یه خود پن بود برای لیسوازیه لیسپاسیس منو گفتن شما ما بازی کردم. مثلا می‌گفتن که دیوار رو دیوارو یا کنار همدیگه میو. یا هر, هر جوکی ج... میتونستان بندازن و کنار هم بشین لیستپاسیس میکنن. یکی اولی لیست بود و بقیه پس لیست بود. بچه ها با اینو بازی میکردن. بچه ها خیلی, هم بود. بود. خیلی هم بازی خوب بود. هم دقتشون در حقیقت سنجیده میشد و هم اینکه با طبیعت کار میکردن. نه این این های کامپیتیتی که مغز و هوش و روان جون بچه‌ها رو کرده نبود. هر صورت این سنگویی بود که مال زیست بود و یک سنگوی دیگه هم ما پیدا می که می خونه تو تاریکی تاریخی های اون زمان که خیلی به تاریکی مطلق نزدیک بود چون خونه ها شما شایدتون بیاد مثلا یه خونه یه دونه یه اتاق چراغ داشت بقیه اتاق چراغ نداشتن بر و بعد هم اگر ورق بود که خب با چراغ موشی یا چراغ فانوس اینها میراید زنبوری که خیلی اشرافی بود که چراغ زنبور ما نداشتیم عادت <تصفيق> خونه اونیمه خونه باید باشه یعنی تو چراغی زنبوری بود شد... نه چراغ چراغ فانوس, فانوس یا چراغ موچی و با بنابراین همه جا تاریک بود و تو این تاریکی یکی از بازیه که ما می‌کردیم اینکه سنگار رو با هم بزنیم و چرقه بزنی و لذت ببریم ده بار 20 بار 50 بار حتی زیر پله می می‌رفتیم که تاریکتر باشه و اینا رو به هم دیگه می‌زدیم و 50 بار 100 بار 1000 بار اینا رو به هم می زدیم جایی آتش نمی‌گرفت گرفت بله این در صورتی آتش می‌گیره که پوده یعنی چوب پوسیده یا به ویژه پوست پوسیده یا علف خوش یا علف خوش باشه اینا رو بزنن و این ها رو هم وقتی که به رسید کار رو در اونجا وجود داشت کم کم اون روشن میشه آتش میگیره بعد اون رو دیگه به نیروی دم یعنی فوت میکردن و واه می‌گرفت یعنی برای روشن کردن یک آتش در صورتی که پوده یا چوب یک چوب پوست بوده باشه یه ده دقیقه یک رو وقت میخواست تا این روشن بشه ولی به طور که شما میبینید در اینجا میگه که سنگ زدن به اون سنگ به آتش روشن شدن چنین چیزی ممکن نیست در دومی یکی جشن کرد آن شب و باده خورد صده نام آن جشن کرد خب اولا هنوز جام پیدا نشده زخف پیدا نشده خمره پیدا نشده باده از کجا آمد؟ این خوشنگ زمان خانسازی آغاز خانسازی بشره و باده از کجا؟ دوران بعد صده نام آن جشن کرد هنوز گاه شماره وجود نیمده اون از کجا فهمیدیم که این صده است بنابراین خیلی اون کسانی که این داستان رو افتودن و هنوزم هم همه جا در جشن سده به شما قول بدم همین ایشا در جشن سده واضحی که سخنانان همین مطلب رو گفته و به اون این جریان توجه نکردن افزاینده به در اینجا در حقیقت این خیانت کرده که بزرگترین دستاورد فنی بشر رو در بار پیدا کردن آتش در حقیقت زیر پرده بوده اون در این ا به سنگندر آتش از اون شد پدید کزو روشنیگی یا کزان روشنیگی در جهان گسترید یعنی کوچش درازوهنگ نیاکان ماست در طول ده ها و ها تا کم کم به اونجا رسید که فهمیدن در سنگ آتش است و این آتش رو کم کم به خدمت گرفتن همطور که عرض کردن البته اول که دونستند کم کم روی پوده های چوب روشن شد کم کم و آتش رو بشر پس از صده ها و پس از هزاره ها تمرین به دست آورد نه اینکه اتفاقی باشه یه سنگ رو به سنگ بزنن این اینا دلایل کلی این جشنه خود جشن صده چی هست در ایران و باستان گرمای جان جهان رو میگفتن رپیتوین رپیتوین هم با نیمروز همراهه یعنی چون مینید هر چقدر که خورشید بالاتر میاد و به نیمروز نزدیک میشیم هوا گرمتر میشه و هر چقدر کم کم خورشید دیگه پایینتر میره کم کم این رپیتوین هم برقیق پا به پایان میرسه بنابراین یک نام رپیتوین یعنی نیمروز و زمنان نام دیگه رپیتوین است که در خود جان جهان هست و یه زمانی بود که البته گاشماری صورت ها مختلف داره آریای باستان که هندوستان هم از همون برخوردار بوده سال به دو بخش میکردن یه بخش داره هفت ماه بود از فروردین تا پایان میر یه بخش داره پنج ماه بود از آبان تا پایان اسفند خب این موضوع خیلی مهمه که نیاکانو ما فهمیدم که از آغاز آوان ما گرما یعنی رپیتوین یعنی گرمای جان جهان میره به زیر زمین برای گرمه گهت داشتن ریشه درختان و گرمه گهت داشتن چشمه های آب و کاریز ها شما اگر زمستون دیده باشید یه جایی چشمه باشه ازش بخار بارن میشه اگه اون گرمه رو از زمین داره میگیره یا یه جایی از قنات آب میداره آب گرم تر بله، آبی بله از, زم... یعنی از زمین یعنی زمین گرمه یعنی زمین گرمه خوشبختانه این کشف نیاکوانه پرجمند ما رو امروز دانش پیدا کرده و درست منطبق بر همون چیزی که نیاکان ما میگفتن یعنی اعتقاد داشتن که از اول آبان گرم های جان جهان برای گرم دیگر از درختان در گیهان آب ها میره زیر زمین و روز دهم و به ما میاد بیرون خب حالا شما در نظر بگیرید که این دانش امروز زمین شناسی هم همین میکنه درست همین روز گرم میاد بیرون و کم کم زیر زمین دیگه خنک‌تر میشه. و اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم که در تابستان درختان برگ میکنن و شاخه میکنن برای ریشه ها چنین نیست. ریشه ها در زمستون گسترش پیدا کنن. با حضور رپیتوین یعنی گرما در زیر زمین. خب درست روز دهم ده و ماه ما این گرما میاد بیرون. شما گمان میکنید که ایرانیان این گرمای جان جهان که میاد بیرون با چی باید بپذیره برند یعنی استقبال ازش بکنن میفرسم از اصول. ما بریم به گرمای جان جهان چی باید براش هدیه ببریم چی باشه که با اون بریم به استقبالش آتش از اون گرما با آتشی که در استقبال میکنه. به این موضوعم به شما کنم. هیچ کسی جا نگفته. برای نخست این باره که بدونم ارز کنم. و متاسفانه همه هم به دنبال همون داستان افرادای دروخ هستن. که بله. ما را یه پدید آمده دور چیزی درست. خواستم این موضوع بسیار دانشی رو با جوانان فرزانه ایران و مادران و فرزندان و پدرانی که این برنامه گوش میکنن خوشبختانه دیگه سمارشون خیلی زیاد شده و خود منم بر مرتبا میرسه یعنی با باستابش میرسه است که گفته باشم که نخستین بار این مطلب علمی جهان را که پایگاه دانشی نیاکان ما رو در حقه روشن میکنه در این برنامه گفته باشم درست روز شده صد روز از زمستانه بزرگ گذشته از, اول, از, آبان. از آب... اول آبان آبان آزر دیل نوت روز ون. توی بهمن در روز میشه سد روز. روز جشن سده میشه مفهومش اینه درود بروان خردمند فرزانه ما که اونطور محاسبه کردن دونستن که یا گرمای جهان جهان که میده زیر زمین و که میاد بیرون این چیزیست که دانش جهانی امروز زمین شناسی همین رو باورد داره و ما منطقه هنوز به دنبال اون داستان افرادستیم که حوشنگ دونه سنگ زد به سر ما در شاهنامه اشاره شده در شاهنامه اون بیت بزرگ اشاره شده آه. سنگندر آتش از رو شد بدید که از اون روشنی در جهان گسته و این, این روز صد روز از هرزمستان و بزرگ میگذره اتفاقا ما یه که خانهی درست میکردیم در بالاتر از آبلی یه خانه که درست به شیوه خانه های سال پیش بود و یه برنا یا میمار هراتی هم پیدا کرده بودیم که او کاملا دستاورد نیوکان بلد بود و این رو درست کرد مطابق نقشه که ما کشیدیم درست کرد بعد لوره آبی که زیر این خونه بود یخ بسته بود من از این استاد که نامشم میگفتیم خلیفه پرستم که چکای کنیم آب سرد بریزیم روی اینا گفت که استاد جان ما بارها این امتحان کردیم وقتی که آب زیر زمین یخ ببنده هر کار بکنین آتش روشن کنید، آب گرم بریزید هر کار بکنین این نمیشه باید سب کنید تا چلو کوچیک چلو کچیک که یه یعنی این یه معماری بنای هراتی دوستای هرات این رو میدونست که چله کوچیک که بیاد گرم میشه خودش رو باز میشه اصلا میگن زمین نفس کشید نفس میگن زمین نفس, نفس کشید الان تمام این رستاییان ما پیر زن ها, ها میگن نفس کشید و ضمنان شما میدونید که تا مدتی پیش که این جشن سده به شکوی زیاد در رستاهای کرمان برگزار میشد الان در خود شهر کرمان برگزار میشه و در رستاهای نیشابور هم همینطور در سبلات فای گوزا که متاسفانه اینا دیگه از بین رفته منتها در بعضی از روستا های غربی سبزوار هنوز چه چیزی داریم که با این و شکوه بسیار بسیار برگزار میکنند آتش میبرند آتش میبرند به پذیره گرمای جان جهان این الان در روستای به نام آزادواره سبزوار هنوز مواقع داریم این صورت های میکنیم اونا دارن جشن میگیرن و شاد باد روان و نیاکان گرام ما که یکی از پدیده های بزرگ دانش جهانی رو کشف کردن آتش آه، نه این گرمای جهانی ها اول بل، بل، بل. میره پایین در روز دهم همه, همه میاد بیرون بل. در حالی که ما با خود موقع که خب هنوز هوا سرده نباید گرما بیرون اما و هر پیده زن ما میگه چلد کوچیک زمین نفس میکشه این هم گرمای جان جهان هستش زمین هستش هم به خاطر یافتن این آتش هستش من اینجا رو متوجه نشودم نه یافتن آتش به این احتباط دن یافتن آتش یک کاری است که هزاران سال تود کشید به سنگندر بله خیلی مهمه به سنگندر آتش از او شد پدید که او در جهان روشنی گسترید اما این یکی دانش پسینه که فهمیدن که گرمای جانجهان مدتی بیرونه اصلا در تمام مطابستان بحارینا بیرونه از اول آبان ماه میدونی زیر زمین و تا روز صده زیر زمینه و بعد روز صده میاد بیرون این است روز که گرما اومد بیرون و اونایی هم که پیشواز رفتن شاد باشن و پیروز باشن ما جای اون داره که به دانش بزرگی روانیم نیا خودمون درود بفرستیم پیامک های زیادی اومده از شما عزیزان که تبیه گفتید جشن صدر رو منطقه یه پیامک شما میخونم یه دونه پیامک میخونم که با توجه به حال استاد هستش درود جشن صدر رو شاد باش میگم به استاد بگید صداشون بسیار زیباتر و جوان تر شده شاد باشید پیروز باشید شنونده برنامه پنجره های رو به هستید آقای استاد سیدون جنیدی کارشناس برنامه یک به شب خواهی ما هستند و در داستان‌های داستان های شاهنامه صحبت می‌کنند ایشان و در حال حاضر الان در این بخش برنامه می به ادامه داستان نبرد پهلوانان در شاهنامه فرگوسی من اجازه بدید یک بار دیگه تلفون ها رو کنم و پیامک‌هایی هایی که اومده اینجا عرض می‌کنم خدمتتون پیامی اومده گفتن که سایت بنیاده نیشابور چه را میافته با با نوروز امسال دیگه گسترده را جا اینطور فرضان بنیاد به با من اینطور گفتن با امید خانم خیلی گسترده این خبر خوشتون بود نه یا نه خبر... یه خبر, <تصفح> خبر بهتری خب که من امروز شنیدم که یک فرزندی به نام امیر حسینیم میرحقی از خراسان در کنکور <متش> دانشگاه خورشید برنده شده و خانوادهش خواستند بر او هدیه بگیرند. و این فرزند گفتم من هیچ هدیه ای نمیخوام قیاس شانم و خانواده به تکه پوختند و تلفظ زدند به پن یادنش و امروز این کار برایشون پست شد و آرمان هم که میدونی که خواهر مزملندو از خدا حفظشون کنه ایشون مدیریت داخلی بنیاد داره ایشون روخصود پس حالا اینطوره من هم یه هدیه بهت میدم خ یه هدیهز زند... کتاب زند... زند... زندگی معجرت آریایی رو. بلد. من اینها رو خیلی اخبار خوبی میدونم که یه خانواده همه با هم یه رو گوش میکن و همه با هم در تکفهو باشن و همه خودشون عضو خانواده بزرگ بنیاد بنیادنینش و فرهنگ ایران بدونن و همه با هم این جشن رو حالا در جشن سطده این جوان ایرانیم آماده میشه که برای دانش بیشتر بره به دانشگاه و برای خدمت میهن این چیزی بود که امروز من از آرمان شنیدم بله ان همه دانشجو همه اون کسانی که در کنکور شرکت میکنند. با امید خدا موفق بشن قبول بشن و این موفقیت رو ما به این جوان ایرانی اهل خراسان تبریک میگیم و عرض میکنم خدمت شما دوباره تلفنهای برآمد عرض میکنم بعد داشتیم شماره تلفن بنیاد نیشابور رو میخواستن. شماره تلفن گونیدین شاوور 88 96 27 84 هست. 88 96 27 84 هستش که گفته بودن میخوان شاهنامه تایید کنن چیکار کنن ارتباط داشته باشن با شما باتون تماس بگیرن سوال دارن با این تلفن تماس بگیرید میتونید با استاد جنیدی صحبت بکنید. تلفن های برنامه 220 485 دویست و بیست، پانسد و هشتاد و هشت دو و شماره پیامک سی هزار پانسد و و هشت سی هزار پانسد و و هشت ما با شما تجربه میکنیم خوب شنیدن و درست پرسیدن رو پیرامون درباره موضوع برنامه سوال بفرمایید استاد جنردی پاسخ خواهند داد. نبرد پهلوانان روی سی و دو دفتر سوان بفرماید بیاری از دن اگر بیاد داشتید که هومان اومد از پیران مرادش نبرد خواست بلد. با این دوبیت آخری رو میگم اگر کت به جستن آهنگ نیست به دلتن در اون آتش جنگ نیست کنم اون باید به بدین رازمگاه نمایم هنر و به ایران سپاه بنابراین سر از رو گردون به طرف سپاه ایران این اومد که جویت زگردان نبرد نگهبان لشکر به دو باز خارد بپرسید که کی مرده پرخاشجوی مرد خیره بخیره به دشتن در آورده روی بخیره یعنی بیهوده کجا رفت خواهی همی چون نبند به چندن درون گرد و برزین کمند که ما را به جنگ تو آهنگ نیست <تص> این یه تو آهنگ نیست زی گودرز دستوری جنگ نیست بیاد دارید که گودرز سر روز سفایان ایران رو نگه داشته و فرمان جنگ نداده از اون سو پیران من داره اگر جنگ روی گوشاده را سوی نام بر پهلوان سفا یعنی به طرف گودرز بر. اوزان پس حیونی تکابر دمان تلایه برفت زی که هومان از آن رازمگه چون پلنگ، سوی پهلوان آمد ایدر به جنگ. که هومان نزد سواران برفت، بی آمد به نزدیک رخام تفت. از آنجا خروشی برآورد سخت که ای پور سالار بیدار بخت. چپ لشکر و چنگ شیران توی، نگهبان سالار ایران توی، بجنبان انان اندرین رازمگاه، میان دو صف برکشید سپا چون این داد روحان پاسخ بدوی که این نام ورگرد گرد پرخاش جوی اگر جنگ گردان به جویی همی سوی پهلوان چون به پویی همی زگودرز دستوری جنگ ها یعنی اجازه بخواد که از گودرز خواه چون پهلوان سپا گودرز است پس از ما به در آهنگ ها اول از گودرز اجازه بگیر برای جنگ بعد آهنگ یکی از ما پهلوانان رو بله. از آنجا به قلب سفه برگذشت دمان تابدان روی لشکر گذشت یکی برخروشید که بد نشان فرو برده گردن ز گردن سواران و پیلان زرین کرش را بود با کاویانی درفش سیاه وخش رد را به فری برداره میگینا رو بله. اگه خاطرتون باشه در اون جنگ از توس گرفتم و دادن به فریبرز بله گرفش کاویان به فریبورز دادن بعدم که از فریبورز گرفتن دادن به گودرز البته ولی خب این داره اشاره به اون زمان میکنه که سواران و پیلان و زرین کفش تو را بود با کاویانی درفش رفش رد را برادر توی به گوهرز سالار برتر توی یعنی نجات تو از گودرز بی بالاتره تو باشی سزاوارو کین خواستن، به کینه تو رو باید آستن، یکی با اکنون با وردگاخ به باید گشتن به پیش سپاه. چون این داد پاسخ فریبرز باز که با شعر در رنده کینه مساز. گاکو من اینا به تلفظ باستانی میگم کم کم کم عادت کنه تا اینکه ما برسیم بیه زمانی که الان در تاجکستان چطور میخونیم؟ در افغانستان همه همونطور با آهنگ باستانی همین همینی میخونن چون این داغ پاسخ با فری باز که با شعری در رنده کینه خیلی هم زیباست کم کم اونجا رعنمون میشیم ما در رفش از من شاخ رباست من شاه رباست دلش خاص که کار کرد در رفش از من گرفت. بدان داد پیلان و که خواست سپه را به دوگ است فرمان جنگ به دوگ بازگردد همه ناموننگ اگر با تو هم جنگ فرمان دهد دلم پرزه درد است درمان دهد یعنی میاد که تو با تو بجنگم و تو رو شکست بدم چون این پاسخش داد هومان که بس به گفتار بینم تو را دست یعنی فقط سخن میگی اقدام نمی کنیم. کمربسته کین آزادگان یعنی هومان که کمر کمربسته بود به کینه ای ایرانیان کمربسته کین آزادگان به نزدیک گودرز کشبادگان بیامد یکی بانگ برزد بلند که ای پرمنش محتر دیوان چو شیر لشکر لشگر را راستی همی بارزو جنگ ما خواستی کنون از پس کوه چون مستمند نشستی به کردار قرم نجمد قرم بزرکویه پشت کو خودتو پنان کردی میگه قبلا آرزو جنگ داشتی بایلانا مثل یک قرم نجمد پشت کو... کو کو رو پشت خود گرفتی دارد یکی لشکرت یعنی لشکر رو به گزاری گذاری اونی بگذران لشکرتو بیار توی دشت یکی لشکرت را به گزار گذار چه داری سپاق از پس کو سار چون این بود پیمانت با شهریار که بر کینگه کوه کوخ گیری حسار یعنی تو با که خود رو پیمان بسته بودید آلا حسار کوخ گرفتی بدو گفت گودرز کندیشه کن که باشد سزا با تو گفتن تخون شما هم به کردار روباه پیر به بیشه در از بیم نخچیرگیر همی چاره سازید و دستان و بند گریزان, و... گریزان زگرز و سنان و کمند به ز گودرز پاسخ شنید چه شعرم در اون به مگه بردمید که من از فریورز و روحام جنگ بجستم به ساون دلاور پلنگ به گودرز بود من به پیکارشان شنیدن نیرزید گفتارشان فراوان پسر داریه ای نام ور همه بسته بر جنگ مابر کمر یکی را فرستی برای من به جنگ اگر جنگ جویی چه جویی درنگ چون این داد پاسخ به حومان که رو به گفتار تندی و کار نو چون در پیش من برگشادی زبان بدانستم از آشکارت نهان ندانی که شیر جیان روز چنگ نه دز... دزبون به روباه چنگ یعنی او رو روباه به شما رو خودشی شیر گفت هی فکر کردی که شیر ممکن نیست به روباه حمله کنه چنین کاری از شیر بعیده تو روباهی و من شیرم دو دیگر دلشگر چون این ساخته همه با پایان سرف راخته یعنی تمام اصباه سرشون رو بلند کردن آماده جنگ هم در باره این که سرشون بلند می گیرن من در گفت پیشین سخن گفتم برای همه پیش باید شدند و انبوه زخمی بباید با زدن به دو گفت هومان به بانگ بلند که بی کردن کار گفتار چند. نداری از ایران یکی شیر مرد که با من کند پیچ لشگر نبرد. به چاره همی بازگردانیم نگیرم فریبت اگر دانیم اگر منو میشناسی. دانستان همونی دانستان هم شناختند. از تو ناو همین منیر داره. همه منی شناختنم و نیدانستنم به چاره همی بازگردانیم نگیرم فریبت اگر دانیم همه نامداران پرخاش تو به گودرز گفتن تین است روی که از ما یکی را با آوردگاه فرستی به نزدیک او کینه ها چون این داد پاسخ که امروز روی ندارد شدن جنگ را پیش اوی چه گودرز برگشت چیر برآشفت بر برسان شعر دلیر درست بخونم. چه هومان زگوده از برگشت چیر برآشفت شفت برسان شعر دلیر. به بالا برآمد به کردار مست خروشش همی کوه را کرد فست. همین ایزه برگاشت برگرد سر برگاشت برگردند. که هومان ویسه است پیروزگرد. خروشیدن نای روین زده هشت برای چون ایزه به بالا گذشت یعنی تورانیان شروع کردن به زدن نای نواخدن نای به عنوان شادبانی شادی دل ایران و توران سپا خمی ترک سودن بر چرخ ماه یعنی سرشون بلند شد ترک یعنی کلا خودشون به چرخ ماه رسید یعنی سرشون بلند کردند گویی که به ماه رسیدن خبر شد به بیژن که هومون چه شعر به پیش نیای تو آمد دلر به پیش پدر شد پر از کیمیا سخون گفت با بااوز بهره نیا چنین گفت مرگیو را که پدر بگفتم تو را و من همه در بدر در بدر یعنی فصل فصل باب به باب که گودر را هوش کمتر شده است و آیین نبینی که دیگر شده است دلش پرنهیب است و خون جگر تیما رو از درد شندان پسر پسرانی که در جنگ پیشین از دست داد گودر نشاید جز از من که سازم نبرد بدان تا برارم ز مردیش گردنی یعنی از مردی هومان تو را گفته بودم به دو گفت گیوی پسر هوش دار به گفتار من سر به سر گوش دار تو را گفته بودم که تیزی مکن ز گودرز بربد نگردان سخون که او کار دست و داناتر است بر این لشکر نامور مهتر است نفرمود با او کسی را نبرد جوانی مگر مرتراخی کرد که گردن به دین سن برفراختی به آرزو آورزو پیش من تاختی نیم من بدین کار هم داستان مزن نیز پیشم چون این داستان